اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا اب القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد قال الحسين عليه السلام إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى نارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل as <laughs> alaykum سلام دارد میچرخد میتوان کلیه علوم دینی را در سه بخش اصول دین، فروع دین و اخلاق دین دسته‌بندی کرد. اونچه که تاکنون از جامعه آشرایی و از اصول و مبانی آن یاد شد، مسائلی در پیوند با اعتقادات مسئولیت ها و احکام تکلیف‌ها ها بود و در جای جای آن از مسائل اخلاقی هم می‌توان اشاره برد ولی امروز از این مسائل اخلاقی که در دین وجود دارد و در واقع کربلا خیلی نمود پیدا کرده است لازم است با هم مرور کنیم و دوباره در زنها برجسته کنیم چرا چون اخلاق از مسائل مهم است که جهت خدای دادن به کارها و بزرگواری و اخلاق شایسته انسانی از اهداف به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شمرده شده است اخلاق بسان نتیجه عمل کردها و بسان میوه عمل کردها و تکلیفها و باورها نمود پیدا میکند. کند درخت وقت میوهش درست نباشد ارزش زیاد پیدا نمیکند. تفاوت دو تا درخت میوه نسبت به همدیگر با شیرینی میوه هایش هست اون درخت زرد آلوی مثلا که از اون زرد آلوی دیگه شیرین تر هست بدون شک اون درخت نزد صاحبش و نزد دیگران با ارزش تر هست مسلمانی که اخلاق زیباتر، اخلاق شیرین تر، اخلاق بجان نشین, نشین منتر دارد بدون شک از اون مسلمانی که دارای اخلاق نادرست و نامناسب هست بهتر است بر این اساس مسائل اخلاقی مهم هست و باید مورد توجه قرار بگیرد چون کاشتن بذر اخلاق از اهداف و رسالت های انبیا و اولیا شمرده می شود و این مهم هست در کربلا وقتی ما نگاه کنیم های اخلاقی را خیلی زیاد می توان مشاهده کرد در کربلا شما مفاهیم اخلاقی چون صبوری، ایثار، جوانمردی، وفا، عزت، شجاعت، وارستگی از تعلقات دنیایی، اخلاص توکل، خداجویی همدردی و بزرگواری اینها را بسیار به صورت واضح مشاهده می و نمونه از پیام های اخلاقی آشرایی می یاد کرد که در گوشه گوشه واقعی بزرگ و این حادثه دلخراش می مشاهده کرد و نمود دارد بسیار واضح هست در قسمت صبوری ها ما شما می بینیم که آشرائیان در برابر حملات دشمن چگونه پیشه کرد. وقت امام حسین علیه السلام به نماز ایستاد نماز ظهر یکی از یاران حضرت خود را در روی امام علیه السلام قرار داد تا دشمن تیر را وقت حواله می کند به امام نخورد بعد از نماز می شمارن که این نفر خیلی تیر خورده است و در او لحظات آخر با وجودی که اون همه تیر خورده است از آقا سوال می کند که آقا جان آیا من به تکلیفم وفا کرده ام یا نه به تکلیفم و به وظیفم عمل کرده ام یا نه خودش تیرها خورده است بدنش پاره پاره شده توسط تیر ولی باز هم بعدی سؤال میکند که آقا جان که داشتم عمل شده است یا نه؟ این هم است هم وفا هست و هم شجاعت هست. در فرد فرد مردان آشرایه نمونه های ارزشمند اخلاقی زیاد دیده می شود. از مردانش گرفته تا بانوانش گرفته، تا فرزندان خرسال آشرایی، تا پیران، پیرمردان و همچنین بانوان سین ای که در کربلا هست همگانشان نمونه های بارز از اخلاق را در وجودشان به نمایش میگذارند اون خانوم چقدر از دنیا دیل برده است که وقت شوهرش تازه هم عروسی کرده شوهرش بنا دارد به سمت دشمن حرکت کند اینجا با شوهرش میگوید من با تو شرطی دارم با تو حرفی دارم مادر اون فرد میترسد ولی این خانون در جواب چی میگوید شرطش چیست شرطش آن است که در فردای قیامت در بهیشت هم این خانم همسر همون مرد باشد. اینها نمونه های از زیبایی هایی است که در کربلا دیده می شود اون مادری که سر فرزندش رو انداخت او خانمی که شوهرش رو تشویق کرد از کوفه آمدن کربلا کربلا هم وقت شوهرش رفت شهید شد این خانم رفت به میدان و خانومش هم شهید شد پسرش هم شهید شد در کربلا ما بانوی شهیده و زن شهیده هم داریم هم خود هم شوهرش شهید شده هم خانوم شهید شده و هم فرزندشان شهید شده است. اینها و از بسیار ارزشمند واقعی آشرایی است که باید مورد دقت قرار بگیرد یعنی جامعه آشورایی نمیتواند تشکیل بشود تا اینکه این مسائل بین مردم زنده شده باشد وقتی مردم به خاطر دین توانی سبوری به خرج بدهد و صبر کند اینجا می شود جامعه آشورایی را ساخت وقت مردم شجاعت بود نه ترس بود میشود جامعه آشرای رو ساخت وقت مردم دل از دنیا کنده بود دل از مسائل خانه و اموال و دارایی کنده بود میشه جامعه آشرای رو ساخت وقت مردم ازت طلب بود میشه جامعه آشرای رو ساخت ولی خدای خواست اگر مردم ازت طلب نواشد حاضر است آبرویش برود ولی زنده بماند با این وجود نمی شود جامعه آشرایی را ساخت مردمی که دل به خدا نبسته باشد توکل به خدا نکرده باشد نمیتواند کار مهم رو رقم بزند مردمی که خداجو نباشد مردمی که اخلاصمند و اخلاصمدار مدار نباشد نمیتواند جامعه آشرایی را تشکیل بدهد در حادثه آشرا وقتی ما نگاه میکنیم در اون منزل وقتی علی اکبر علیه السلام و سلام از بابای سؤال میکند بابا جان آیا ما در حق نیستیم؟ ایمان علی سلام میفرماید قسم به اون که خالق هست ما در حق هستیم بعد حضرت علی اکبر میفرماید چی باقی از مرک؟ وقتی راه درست انتخاب شده باشد دیگه باید سرسپرد و درگاه خداوند متعال از خش گذشت، از همه چیز گذشت و در راه خدا باید خونی دیل داد با این صفات هست که میشود جامعه آشرایی ساخت پس طلاب بانوی که میخواهند دنبال جامعه آشرایی هستند. این مفاهم اخلاقی را مثل مفاهم احکام و مسئولیت ها و تکلیف و اعتقادات باید در رگ رگ مردم مثل خون جاری کنند تا بیتواند جامعه آشرایی را تشکیل دهند و ایلا نمیشود اعتقاد وقت راسخ بود ولی از اون طرف شجاع نبود یا دل بسته به دنیا بود پای این شخص لنگیده است، و ممکن است اعتقادش هم اونچنان اعتقاد راسخ نباشد اینها به همدیگر پیوند دارند و یکشان مکمل مسئله دیگر و آموزه دیگریشان هست عقاید اخلاق را می سازد احکام را زمانت اجرایی پیدا میکند و میدهد و احکام سبب ساز رسوخ عقاید می شود اخلاق ها و زیباییهای های رفتار نمونه های بروزدهنده از عقاید هست حضرت زینب سلام الله علیه در این شبانه روز در او کاخ ظالم در کوفه وقتی که وارد کاخ می حضرت زینب به شکل ناشناس در جای منشیند ابن زیاد سوال میکند این زن کیست میگویند زینب دختر علی است ابن زیاد میخواهد تحت فشار قرار بدهد میگه خدا را شکر که شما را رسوا کرد حضرت زینب میفرماید خدا ظالم و دروغگو را رسوا میسازد و آنها ما نیستیم بعد اون نانجیب برای اینکه زینب را بفشارد چی میگوید میگوید در کربلا چی دیدی حضرت زینب میفرماید و ما رایت الا جمیلا در کربلا جو زیبایی ها چیز مشاهده نمیشود. این همون صبوری است این همون دل سپردن و همه هست و بود دادن در راه خداست اینجا زیبایی ها مشاهده میشود اخلاق مشاهده می شود او سجیه اخلاقی و او های درونی اخلاقی مشاهده می شود جامعه باید این گونه باشد مخصوصا جامعه ایمانی و جامعه شیعی تا زمانی که این گونه نباشد نمی تواند چون این چیز را تشکیل دهد چندتا تا مسئله را باید در اینجا برجسته کرد اولین ای که از آن یاد کنیم مسئلهی عدالت خواهی است جامعه باید عدالت خواه باشد و این از بارزترین محورهای قیام حضرت آقا و مولا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست جامعه تا زمانی که ظلم ستیز نباشد و در زیر بار ظلم زندگی کند جامعه آشرایی شده نمیتواند امام علیه السلام نامه را به بزرگان کوفه مینویسد در این نامه یک تیکش اینطوری است فلعمر مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط قسم به با عمر من امام نیست مگر اینکه حاکم باشد که بر اساس کتاب و قرآن حکومت کند و چی القائم بالقسط عدالت پیشه کند حاکم باید عدالت پیشه باشد تا زمانی که حاکم عدالت پیشه نباشد نمی شود اون جامعه رو جامعه آشرایی خواند خوند حاکم باید چنین باشند مردم باید چنین باشند وقتی جامعه جامعه عادلانه بود جامعه معتدل بود جامعه که از افراد و به بدور بود این جامعه می تواند جامعه آشرایی باشد مسئله دیگر مسئله صحوه و بیداریست مسئله غفلت است در آشرا و واقعی آشرا این مسئله بسیار به صورت واضح نمود پیدا میکند بارها امان علیه و سلام و بقیه اصحاب از این نکته یاد آوری میکنند که اهل بیت حسین اهل بیت پیام برند علیه سلام در جای در جای از سخنانش هست میفرماید این مردم کسی را می کشد که فعلا در روی زمین پسر پیامبر چون او پسر پیامبر غیر از او نیست این برای این است که مردم را از غفلت بیدار کنند و مردم را هوشیار کنند اینان نکات مهم است و جمعه نکات دیگری که باید توجه مورد توجه قرار داد مسئله غیرت هست غیرت یکی از ها و صفات پسندیده است که در لغت به معنی تنفر از شرکت کردن کسی دیگر در او چیزی که مورد علاقه فرد هست می باشد اما در اصطلاح به تعبیر علمی یا منظور از غیرت این است که آدم نسبت به ناموس خود نسبت به اعتقادات خود نسبت به فرد مورد علاقش به قدری احتمام بورزد و جدیت به خرج بدهد که به دیگران اجازه ندهد که در حریم او تعرض کند بر این اساس فهمیده می شود که غیرت دو نوع است غیرت یک نوعش غیرت ناموسی است و یک نوع دیگرش غیرت دینیست، غیرت ناموسی همون عفاف و حجاب هست امام علیه السلام در اون لحظات آخرش وقتی که در گوده قتل و گاه آرام گرفته بود و در بدن مبارکش رمق نمانده بود که از جایش بلند بشد و حرکت کند همونطوره در قتلگاه افتاده بود ولی با آن وجود هم آن نانجیبان نمیتوانستند به امام علی سلام نزدیک بشوند برای اینکه بفهمن امام علی سلام آیا جان به جان آفرین تسلیم کرده یا هنوز هم است تا که اون نانجیبان آرام بشن و مطمئن بشن دستور دادن که به خیمهگاه ما حسین حمله کنید وقت دستور حمله به خیمگاه صادر شد یک نفر صدا زد که حسین به خیمگاه حمله شد اینجا ایمه علیه السلام چی می فرماید این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاده فکون احرارا فی دنیا آی پیروان ابو سفیان اگر شما دین ندارید و از میعاد ترس نمی خورید، فکون و احرارا فی دنیاکم حداقل در دنیای خود آزاد مرد باشید این بیانگر چیست بیانگر اینه که او روحیه غیرت امام اینجا به جوش می آید و اینچنین صدایش رو بلند میکند و از جایش با وجودی که امام حالت ضعف را در بدنش پیدا شده از جایش به سختی بلند می شود و چونین می فرماید آی پیروان ابو صفیان اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید در دنیا آزاد مرد باشید اونجا کسی صدا می کند که چی میگه ای ابو عبدالله امه علیه سلام می فرماید فم نعطاتکم عن التعروب به حرمی مادون تو حیاب تا زمانی که من حسین زنده هستم اون بدان خش را اون نانجیبان خش را اون عطات خش را از تعرض به حرم من حسین منع کنید شما با من جنگ دارید نه با حرم من تا زمانی که من حسین زنده هستم چون این کار را نکنید از تعرض به حرم من بپرهیزید این همون غیرت ناموسی است یعنی یک جامعه آشاره چون این غیرتی دارد نمیتواند در, ق... در این زمینه تحمل کند این نتی... نتیجهش همو عفاف می شود نتیجش همو حجاب می شود بنابراین اون خانومی که به حجاب هست بیانگر این است که هم خودش این روحیه و این غیرت در وجودش هنوز ریشه دوانیده نشده و هم خانوادهش ممکنه دوچار مشکل باشد و البته خانواده چی کند نسبت به اون خانوم هایی که هرچه به گفته گفته بیشود باز هم بیباکی <تصفح> بنابر این بانوان و خانوم های طلبه متوجه باشند که این مسئله یعنی غیرت رو در وجود همگان باید به جوش آورد هم در وجود مردان و هم در وجود خانون ها مگر ما نسبت به بانوان اهل و بیت السلام کم داریم وقتی وارد کوفه شدند، وقتی داشتن طرف شام می در جای جای منزل و راهها خوراک باب را قبول نمی کردن می صدقه بر مخاندان حرام است ولی پوشیدن باب را قبول می کردن. و حتی امام سجاد علیه السلام در یکی از منزلها در از هست ظاهرا یا یک قصر دیگه است ایمان علیه السلام در اونجا یکی از جوانان را مشاهده می کند که گریه می کند ایمان علیه السلام بهش میفرماید همه مردم خنده میکنه شما چرا گریه می اون جوان میگوید که ای کاش من در اینجا نیامده بودم و این وضع شما را نمیدیدم چون که فهمیده بود اینها خاندان اهل هست هستند بعد امام علی سلام بهش می‌فرماید که برو به هم ساربانی که سر سرها را دارد حمل می‌کند بگوید که سرها را دورتر از اهل حرم یا از زنان دورتر حمل کند این جوان می رود دینار یا پینجا هزار دینار با آنها می دهد تا سرها کمی دورتر بشود و می شود دوباره می آید میکند می کند آقا جان بفرماید اگر خدمت دیگه بی توانم اما علیه سلام می فرماید اگر می توانی لباس بیاور چادر بیاور این جوان به تندی می و پارچه های را می تا که بانوان حسینی خود را بپوشانند وقتی از این قضیه او شمر ملعون خبر می شود این جوان را خیلی مورد ضرب و شتم قرار می دهد بگونه که می افتد روی زمین و نصف شب است این جوان به هوش می آید می بیند که بدنش آسیب دیده عیب دیده و مورد شتم قرار گرفته است اینها نمونه های از چون این مسائل در وجود زنان و در وجود مردان هست پس غیرت از مسائل اخلاقی مهم و رکن اساسی اخلاقی جامعه آشرای است غیرت دیگه غیرت دینی است وقتی مردم غیرت دینی داشت از مظلوم دفاع میکنند از حق یاری میکنند رو یاری میکنند و با باطل مبارزه میکنند کسی که غیرت دینی داشته باشد نمیتواند مخالفی، مخالفین دین به دینش تعرض کند و این شخص آرام بنشیند در کشور ما و شما کم اسلام ما و شما مورد تعرض قرار گرفت کم فرهنگ دینی ما و شما مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفت کجایند آن غیرتمندان دینی که از اسلامشان دفاع کنند از باورهایشان دفاع کنند از عقایدشان دفاع کنند و عمل نشان دهند بر این اساس بر بانوان طلبه و بر همه دین مداران هست که این غیرت دینیشان را به جوش آورند امام علیه السلام از مدینه برای چه حرکت میکند؟ امام علیه السلام میفرماید اگر مانند شخصی چون یزید سردمدار و حاکم مسلمان باشد دیگه باید فاتحه اسلام را خواند. این هم غیرت دینی امام حسین علیه السلام هست یک طلبه مرد و زن باید غیرت دینیش هم بجوش آمده باشد تا بتواند یک جامعه آشرایی را تشکیل بدهد و در این زمینه حرکت کند بعد جامعه هم باید این غیرت دینیش در رگ و دوانیده شده باشد و احلا جامعه آشرایی شده نمیتواند تواند وقتی مردم غیرتی دینی نداشته باشد یک کمی مشکل برای مردم پیش بیاید مردم از دین دست بر دارند وقتی در روایت داریم دین در پیش اده از مردم یا زیادی از مردم لقلقهیست تا زمانه که امور دنیایشان با دین پیش می رود. اینها دین مدارند ولی همین که کمی سختی دینی آمدن بدین دین می شون. این روایت خوشدار است معنیش این است که در وجود چنین مردمی غیرت غیرتی دینی اصلا به وجود نیامدن تا زمانی که مردم در فردو دین به دنیایشان می دین مدارند ولی همین که مشکل آمد از دین خبر نیست در همه افغانستان و همه کابل جای جای کابل بودن مردمی که در زمانهای مختلف مز... مذهب متفاوت برای خودشان برگزیدن شاید اوایل تقیه میکردند ولی بعدن شدن یک چیز دیگه تا که فعلا ها دوباره برگشتن به مذهب اهلوببه تعال مسلات و سلام و مدرسه پر ارج و پر گام و پر کام و کامگار اهل بیت علیهم السلام اینها معنیش این است که روحیه غیرت دینی باید بین مردم باشند بر این اساس مسائل اخلاقی که یادآوری شد صبوری ها و ایثارگری ها و غیرت ها نکات مهم است که یک طلبه جامعه ساز آشرایی نمیتواند بدون توجه به با آن باشد و یک جامعه آشورایی نمیتواند تشکیل بشود جز این که این مسائل باید وجود داشته باشد از خداوند مهربان امیدوارم که ای زبایه های اخلاق را اول خود ما بتوانیم در درون خودمان ایجاد کنیم و بعد می توانیم یک جامعه آشرایی این چنین اخلاقمند و زیبا را به وجود بیاوریم و تشکیل دهیم ان شاء الله تعالی به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الروح التي حلت بفنائك عليك مناه اسلام الله أبدا ما بقينا وَمَا كَانَ لَيْلُهُ وَالنَّهَارُ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَا بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهَ ما گشت پای من آن در ابتدى الله برو بروی خاری مویلان دویدم در یکی از منزلها اهل و به سمت شام میروند هوا بسیار سوزان است کاروان مجبور میشوند جای را سبر کنند آن نجیوان برایشان خیمه استوار میکنن همگان وارد خیمه ها میشون اما اهلو بیت روی زمین گرم دل آفتاب با اون هوای سوزان اینجا زینب است نقل میشود زینب کنار امام سجاد آمده با چیزی که در دستش هست برای امام سجاد هوا را پکه می کند اینجا نقل می کند زینب میگوید بر ام چقدر سخت است که تو را به این وضع ببیند یکی از دختران امام حسین به نام سکینه همراه همراه خواهرش فاطمه هم محمیل است در این موقع می رود درخت را مشاهده می کند می روید تا زیر سایه این درخت بنشیند نزدیک درخت می کمی کم خواب خاک را آماده می کند تا بالشه برایش درست کند سکینه زیر این درخت می خوابد وقتی به خواب می روید. کاروان حرکت می کند همین که کاروان حرکت می کند فاطمه متوجه می شود سکینه نیست بساربان می میگوید، خواهرم فاطمه خواهرم سکینه نیست تا زمان که سکینه نیاید من نمیروم ساربان صدا میزند خواهرت کجاست فاطمه میگوید من نمیدانم ساربان چند بار صدا میزند سکینه سکینه بیا که سوار شطور بشویم برویم سکینه خواب است کاروان حرکت می کند، به گفته‌ها، به فاطمه توجه نمی کند. کاروان حرکت می کند، اما سکینه به خاطر سوزنگ بودن آفتاب از خواب بلند می شود. می بیند که کاروان رفته است، اما سکینه تنها مانده است. اینجا سکینه صدا می زند خواهرم فاطمه جان مگر هم محمل نبودیم چرا رفتیم مرا با پای برهنه در دل انبیابون سکینه هر سمت سو دنبال کاروان است مجراه گشتم مجراه گشت پای من آن در مسیر از بس بروی خار مغیدان دویده ما بین مرگ و زندگی به حضور باب از این دو مرگ زمیان برگزیده چشم فاطمه به سمت بیابان و خواهرش است یک مرتبه مشاهده میکند خواهرش سکینه از دور نمایان شد اینجا فاطمه با سوز دل به ساربان میگوید ساربان خواهرم سکینه مشاهده میشود یا شطور را نگهدار تا خواهرم برسد یا من خودم را از بالای شطر به زمین میافکنم به خدا قسم فردای قیامت در تشه رسول خدا خونم را از تو مطالبه میکنم علا لعنت الله على القوم الظالمين